دارای جهان نصرت دین خسروب کامل یحیبن مزفر ملک عالم عادل ای درگه اسلام پناه تو گشاده بر روی زمین روزنه جان و در دل تعظیم تو بر جان و خرد واجب و لازم انعام تو بر کون و مکان فایز و شامل روز ازل از کل که تو یک قطر سیاهی و روی مه افتاد که شد حل مسائل خوشید چون خالص یهدید به دل گفت ای کاج که من بودم یان هندوی مقبل ها فلک از بزم تو در رقص و سما است دست طرب از دامن این زمزم مکسل مینوش و جهان بخش که از ظلف کمندت شد گردن به خواه گرفتار سلاسل دور فلکی یک سره منهج عدل است خوش باش که ظالم نبرد راه به منزل حافظ قلم شاف جهان مقسم رزق است از بحر معیشت مکن اندیشه باطل حافظ قلم شاغ جهان مقسم رزقه است از بحر معیشت مکنندیشه باطل